جمعه برای یه جلسه اینطوری طوری دوره هم جمع بشن آدم خیلی تشویق میشه که خیلی بهتر و پروپیمونتر و این شوق شنیدن موجب میشه آدم اینقدر بهتر هم انشاءالله بگه من که تشویق شدم برای سلامت خود این صلافت وقتمون چه عدایت دادی؟ تا چند؟ تا هفت؟ تا هفت؟ یعنی چه لقه؟ تو چه لقه چی بگم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم نه حالا من نپرسیدم چه لقم چقدر باید طول بکشه اینا دیگه نپرسیدم در بحث روش شناسی شاید که نه حتما مهمترین چیز در خصوص خروجی احکام و خروجی فق توی نهله های متعدد فوقه ها توی اوزه بحث روش یعنی شما اگه روش رو با وجود روش اشتهاد اون نهلهای های روشی اگر تغییر کنه خروجی حتما تغییر می کنه. یعنی یک کسی ممکنه بر اساس اشتهاد مثلا فرض کنید که نص محور یا نص بسند رفتار کنه خروجی حکم می الف بر اساس نظر یا روش ب مثلا را حرکت کند می شود نتیجهش می شود ب بر اساس یک روش مثلا اخباری می شود خروجیشی. مثلا می شود جیم بر اساس روش مثلا فخر نظام می شود خروجیش دال و می توان از یک مسئله و یک موضوع خروجی مختلف گرفت یعنی اینجا گفت حلال اینجا گفت حرام اینجا گفت واجب اونجا گفت مستحب این که شما خروجی یک مسئله رو تو استنباهات کنی با روش کاملا تغییر کنم و از جواز به وجوب یا حتی به حرمت برسه این نکته بسیار مهمیه دیگه شما نمیتونه ازش گذر کنیم نکته مهمتر اینه بیت خیلی خوب دیگه حالا من میخوام بیام یک حکمی رو استنباهات کنم با روش الف انجام میدم چون میخوام حرام بشه اون روش رو با به انجام میدم چون میخوام واجب بشه خب دست خودم میشه که اینکه چه, چه اجتحادی شد که من بر اساس روش علف انجام بدم بشود مثلا حکم علف بشود مجاز، اونجا بشود حرام اونجا بشود واجب اونجا ب... اینکه نشد کار که خب چه اجتحادیه که هر هرچی دستوش ممکنه در بیاد نکته مهمینه که در اجتهاد ما حق نداریم از هر روش استفاده کنی بگیم خب حالا من از روش علف استفاده میکنم نه من در اینجا باید از روش علف استفاده کنم در اونجا باید روش به استفاده کنم مثلا در حوزه حکومت من نمیتوانم روی غیر حکومتی داشته باشم که نتیجهش بشه باید علف در روی کرده مثلا فردی ممکن هست قایل به ایتیات بشم قایل به اصالت ایتیات بشم ایتیات هم اشکال ندارم اما توزه نظام نمیتوانم قایل به ایتیات بشم چون به هر جمعش و اخلال نظام منجر میشه لذا انتخاب روش بر عهده من نیست من ملزم به یک روشم <تصفيق> رو ها میفهمید خب آقا اشتحاد اشتحاد روش دیگه دیگه روش فلان روش فلان یعنی چی؟ اشتحاد روش اشتحاد از قدیم مصطلح و جاری بود انجام میدادن اشتحاد که روش ها روش اشتحاده این مقدمه رو گفتم برای همین نقطه که ما در داخل اشتحاد یک الزامات روشی مختلف نسبت به موضوعات و جوانه به مختلف خواهیم داشته باید داشته باشیم که هر کده از این روش ها یک الزاماتی داره یه مثال بزنم به ولایت فقی من تو این چل لقیه نمیدارم چقدر میتونم بحثم رو بگم شاید قدیه مجبور باشم اضافه وقت بگیریم احتمالاً در ولایت فقی دو تا نهله تو روش وجود داره روش اول نهله مرحوم آقای خویی آقای خویی وقتی مخت ولایت فقی رو استنباط کل چیکار میکنه خب تو استنباط چیکار میکنین میگیم سراغ کتاب سنت اجماع عقل ثابت شد چه بهتر نشد هیچ میره سراغ دلیل عقل، میگه دلیل عقل بر ولاد در اسر غیبت نداریم. چون اگه داشتیم فوق ها و اختلافی، نداشتم. همیگه اختلافی من دلیل ندارم من. دلیل پروپیمون ندارم. کنار. بیریم سراغ قرآن، که خب قرآن متشابهات، متشابهات هم که درش نه نیست ولایت فقی هم که تو قرآن معلوم نیست در بیاد اولو لعم اعتمالا به فقط امام معصوم برسه و به معلوم نیست برسه پس قرآن هم هیچ داخل پرانتز با اجماع میگیم خب حالا اجماع برای ولایت فقی فقاها دارن یا خیر؟ میگیم بله اجماع دارن همه ای فقا اجماع برای ولایت فقی دارند. در... همه عزیزانی که اینجا نشستن همشون اومدن اینجا مثلا فرض کنید که این ساعت اینجا باشن یکی مثلا فرض کنید که اومده بحثی گوش کنه یکی اومده زیارتی بکنه یکی اومده یکی اومده قدر متعقنش اینکه این ساعت همه بیدارید اما اینکه همه به قصد قربت برای این درس برای معلوم نیست حالا اینه برای شما نمیگم دارم قاعده کلی دارم میگم قدر متعقن که اینجا هستید اینکه همه این ساعت اینجا بیدارید دارید گوشت میکنید اما آیا قدر متعقنش اینه که همه برای رضای خدا و علم و... معلوم نیست دارم. لذا اجماع رو اگه میخوایم بهش اتخاذ کنیم قدر متعقنش رو میگیم قدر متعقنش به خاطر این ه در ولایت قدر متعقنه از فوقه ها این است که ولایت برای محجوران و غیب و قصر و ناتوان و در راه مانده و است. این مقدار قدر متعقن هم است درست هم است این هم که به کارمونه میاد قدر متعقنه در این که ولایت فقی برای غیب و قصر باشه به چه کارمون میاد میمونه دلیل روایات روایات میفهماد یا سند دارد دلالت ندارد یا دلالت دارد سند ندارد پس هیچی بنابراین ولادتفقی با این مشبور کلان بذاری کنار خب هره هیچی به هیچی می خب هیچی به هیچی که چه کنم بلاخل خدا من در عالم چیزهایی داره اون چیزها رو نمیتونم ولش کنم حسب یعنی کل مالا یردشاره به ترک هر چیزی که شاره راضی به ترکش نیست نمیتونه برش کنه متصدی هم تعیین نکرده خب چه کارش کنیم حتما باید انجام بده بله کی انجام بده قدر متعقن فقیه خب حالا حسبه چیه آقای خوئی میگه دوباره همون غیب خب قصر ناتوان تو راه مونده بیچاره یتیم و عیشام نتیجتا بر اساس این روش که شما اومدی چیکار کردی از عدله شروع کردی کتاب، سنت، اجماع عقل، دلیل جواب نداد رفتی سراغ حسبه حسبه گفت قدر متیقن قدر متیقن از حسبم امینه تمام ولاد فقی شد چی؟ ولایت فقی در محدوده اقویب و گستر تمام این یه نوع استنباته یه نوع استنبات تالا مکتب مکتب نجف مکتب قوم بگی مکتب امام مکتب آی خوی اونش دیگه هم هم باش کائی ندارم مرحوم امام میفرماید که لب به سخن عرض کنه بر اساس منطق روشی مرحوم امام میفرماید که ما در مورد چی داریم بحث میکنیم در مورد ولایت فقیه پس این کلان مسئله جزئی نیست که بگم مثلا وضوئه که بگم مثلا طهارت بگم نه این یک مساله کلیه ولایت یعنی سرپرستی بر جامعه ولایت یعنی سرپرستی بر خود فقیه یعنی اقامه خود فقیه پس سرپرستی بر فکر اقامه خود فکر این مسئله جزئی نیست که من از ادله شروع کنم از کجا شروع کنم از مبانی باید شروع کنم چند تا امام نکته می اینجا فرمایش مرام امام اینه بلایت فقیه یه مقوله که تصور کنی باید تصدیق کنی تمام چجوری تصور کنم تصدیق کنم امام می شما شما فرطتو بیا مرور کن چی داریم قضا جهاد، تأذیر، قصاص، نمیتونم ولایت، نمیتونم تأ... احتکار خب این مجموعه اینا چیه؟ مجموعه اینا یعنی حکومت اونه که ولیت فقیه بحث کنیم که داخل پرانداز فقط بگم و سریع پراندازم ببندن شما اگر تصویر کنید یک چیزی را که همه فوقه ها قبول داشته باشن برای فقیه غذا رو همه فوقه ها قبول دارن که مال فقیه بلا شک بلا ریب اجماع قطعی بلا داریم حتی آقای خویی که ولایت فقیه رو برای فقیه ثابت به این معنی که گفتم نمیدونه قضا میگه ثابته قضا و افتار رو میگه ثابته بقیه معلوم نیست در چقدر ولایت این ولایت در قضا و افتار ثابته قضا چیه؟ قضا یعنی من به جبر بیام حق این مظلوم را از آقای ظالم بگیرم به حق گرفتن زور میخواد احتکار کرده ازش بگیرم بفروشم طلاق نمیده مجبور کنم طلاق بده پول بده کار نمیده ازش بگیرم این کار یعنی حکومت غذا به معنای حقیقش یعنی حکومت ولی لا غذایی که دو نفر میان پیش من میگن نظر چیه ما دعوا داریم چی کنیم بهتره یا تو برو با اون راضی بشو تو میگه خیلی خوب باشه ولی این میشه قاضی تحکیم قاضی تحکیم یعنی اگه راضی شدی باحال که قضا بحث رضایت نیست جبره لذا اگر ما تو فقه فقط یه چیز داشته باشیم و با اونم فقط قضا باشد قضا غذا یعنی حکومت غذا هم همه قبول داره پس به فقیه ثابت شد اصلا بقیه به فقه نمیریسه اصلا چون قدر متعقنشه نگا قضا یعنی حکومت قظام فقط مال پس ولایت فقیه شد حالا بماند که حبس و عدود و غ... تعذیر و قصاص و نمیدونم تعزیرا و جهاد و صلح و نمیدونم هدنه و نب... الان ما شاء الله ما تو فکر داریم که همه اینها در نهایت مالای کاره حکومت همش مال فقیه تموم شد حالا اینکه ولایت مال خداست و خدا میده به پیامبر و پیامبر میده به امام و امام باید به اشبه و ناس به امام باشد که میشه فقیه. اونم بحثی توش نداریم. چون اشبه و ناس به امام باید یه ویژگی داشته باشد. امام معصوم از فقیه معصوم نیست. اما اشبه به اسمت. یعنی چیکار میکنه؟ اسمت علمی ندارد، اشتهر دارد. اسمت رفتاری ندارد، ادالت و تقوا دارد. لذا در اینکه فقیه گذشته متعقن از امام در اسرع بات است بحثی هم، ندارن تو اصل غیبت آقا ما به کی بسپریم تو علمای دین از بین همه میگن دیندار علمای دین علمای دین یعنی کی فعله به همین خاطرم هم فوق و قدر محتقن هست همه را میگن کی فقیه امام میفراند استلال من تمام شد ولایت فقی ثابت شد در امور حکومت ثابت هم شد همینقدر که تصویر کردم پس نگاه جامع پیشینی و تصویر سازی ولایت فقی در مجموعه فقی یعنی اسمات ولایت فقی نه یه قدی بالاتر امام میفهمات خیلی خب اصلا فقی چقدر اختیار داره میگه من به عدله دیگه کار ندارم اصلا همینجا همین که تصویر کردم ثابت شد امام برای چی باید ولایت داشته باشه؟ چون فقه رو انجام بده، فقه رو اقامه بکنه. پیامبر برای چی ولایت داره؟ چون باید اقامه فقه و دین و شریعت بکنه. فقیه برای چی ولایت داره؟ به اقامه شریعت کنه. خب اقامه شریعت چقدر اختیار میخواد؟ هر مقداری میخواد همه با هم مساوی داره. پس سنخ اینکه او امام هست و این فقیه هست در اختیارات هم فرقی؟ استدلان تمام شد امام میفرمد خیلی ها را غیر از این جدو از این به عدله هم نگاه کنیم مینیم سراغ عدله تو عدله هم ازش درم یاد هم درم یاد نمیدارم شده هم درمید به تا میشه میره حالا این دو تا رو بذار کنار هم یه مسئله به نام ولایت فقی ولایت سیاسی فقی ولایت برنای حکومت دو نوع مواجهه با این مادم داریم دو تا نتیجه متفاوت هم داریم. کدوم درسته؟ با دیدم روش کدوم درسته؟ من تو کدوم منطق از کدوم روش میتوانم یا باید استفاده کنم؟ یا واسه مثال دیگه بزنم یه قدری به بحث های آقای امیتو دوره وقت میذارم. تو, می تو بحث فقه حکومت و فقه فردی. یه سوال از همتون میکنم جوابشون معلومه. آقا می خوام وضو بگیرم. چقدر آب رو دستم بریزم؟ یه بار واجبه، دو بار مستحبه، سه بار حرام. پس معلومه سه بار آب نباید بریزم. دوباره سوال می‌کنم. آقا این فقهای که نشستید من نمی‌خوام نیت وضو کنم. می‌خوام همینجوری دستم آب بریزم. یه بار، دو بار، صد بار، هزار بار می‌خوام بریزم. دفعه هزار و هزار یکمی می‌خوام نیت وضو کنم. اشکال داره؟ نه. پس یه سوال اول این بود که شما یه بار دوبار بار اشغال سومی حرام دوباره سوال کردن در هزار و دومین و هزار و سومی هم مجازه یه سوال دیگه میکنم آقا من توی جامعه زندگی میکنم ملت آب ندارن آب محدوده اگه بخوام آب رو هزار بار استفاده کنم برای یک وضو 20 لیتر آب استفاده کنم 20 لیتر داره نمیدونم فلان بکنی به علاوه تعداد بکنی نهاتش اینه که خشکی میشه خوشتالی میشه شکستگی میشه آیا مجازم هزاره یک بار آب بریزم؟ میگه نه مجازم یه حرامه حتی ممکنه کسی بگوید وضو باطله. ما تو عدبیات داریم که اگه مثلا تو بیابون رفتی یه میلیوان آب داری یه سگ تشنه داری و خودت میتونی تیموم کنی آب رو بده سگ تشنه بخور خودت تیموم بکن پس یه مسئله با نگاه به آب به عنوان یک محصولی که تو جامعه هست و حکومته و نیاز جمعیه و همه بهش نیاز دارن که تو استفاده کنی باقیه نمیتونن استفاده کنن اینجا استفاده کردن از آب ویش از مقدار حتی یک بار ریختن شاید حرام باشد و حتی به افتال منجر بشه که نگاه فردی نه آقا هرچی میخوای بزر بگیر داخل پرانتز اینو هم بگم که بد نیست الان که ان شاء آقای میخوان چایی برن مثلا برای 40 الحمدلله اخیرا عراقی یاد گرفتن لیوان بار مصرف میدن قبلا همیشه یه بار میدودن تو آب و در می آوردن همون هم می مثلا چایشون که دیگه معروفه یعنی هزار ی نفر توش آب میخورن جالب هست که مریض نمیشه هم هم اما نکته جالب ما میریم عراق تقریبا نفر چند بار لیوان بار مصرف استفاده میکنیم بالای 50 نفر عادتاً پنجاه زب در 20 میلیون نه ده میلیون میشه چقدر؟ یا عدد وحشتناک کی باد پولشو بده؟ زبالش چی میشه؟ آقا هرکی میره یه لیوان ثابت برای خودش ببره با این نوع نگاه دفعه اول مجاز بود چون اینکه زرفای اونجا نمیشه خورد بخاطر اینکه فلانه خب یه بار مصرف اما تو این نگاه واقعا میشه تو این حزینه های ما بیان میگیم آقا جان ولش کن درفه و مصرف میخورم میندازم میخورم میندازم خب این همه زبالش و این همه خزینه و این همه جمع کردن و این همه و اینا گرونه تقریبا هر کدوم از اینا و هر کدوم یک دیوان ثابت برای خودش ببره ازش استفاده کنه نوع نگاه جمعی و نگاه فردی تو خروجی حکم تاثیر داره نمیشه من میگم خب حالا من به اون نگاه نگاه میکنم واجبه اینجا مستتبه خب بکنیم چون اگه میتونی تو جامعه ای که زندگی میکنه که اونجا آب مثلا به اندازه محدود داری بگی من با نگاه فردی استم باید میکنم هزار یک بار میرزم اشکالی؟ نداره نمیتونیش این کاری انجام بدی از این مقدامه گذار کنم به بحثم یک قدی زودتر برسم ما در حوزه فقه در برخی از موارد باید روی کردم و روی کردم عقل مدار باشم یعنی چی؟ اگر تقسیم کنیم فقر را به دو ارثی ای که یه ارثش می شود حوضه اموری که بشر علم به ملاکش داره میفهمه برای چیه؟ همه میفهمیم. فهمیم غرض از بی نقل اندقال ماله اینو همه میفهمیم چیزی چیز سری وجود نداره غرض از جنگ پیروزیه غرض از حکومت اداره جامعه است قرار از ازدواج زندگی و فرزندآوری معلومه در اموری که ملاکش معلومه و شارع میداند و بچر میداند شاره تاسیس نکرده اصل اولی در استدلال به این قضیه آیا تعبد هست یا اقلانیت به عبارت دیگه در فرایند استنباط اولیت در استباد من از کجا شروع کنم از نسل شروع کنم یا از عقل شروع کنم از بنای اغلا شروع کنم یا از اجماع شروع کنم این تاثیر گذاره در ملاکه در خروجی. در حوزه امور عقلانی من اگر بخوام از نسل شروع کنم و آخرش با عقل تمام کنم خروجی متفاوت میشه مثلا در بحث که آقام اینجا مثال زده در بحث سلاح حالا من داره نمیرسم به ترتیب اون چیزی که مد نظرمه بگم علیه همین اوارد که اینجا دارید می‌بینید در بحث سلاح خب ما تو ادبیاتمون متفاوته که آیا ما سلاح رو به کافر بفروشیم یا نه بفروشیم تو بحث ادبیات که میتونه به کافر بفروشیم تو برخشینی تو زمان جنگ میتونه بفروشیم تو زمان جنگ نمیتونه بفروشید تو اینه که اگر کمک به کافر میشه میتونه نمیتونه بفروشید عدل مختلفیه لذا دلیل اغویون هم غالب تفसील شدن فروش سلاح به کافر مطلقا در زمان جنگ در صورت کمک در صورت اعانه برفران در صورت فلان معلوم امام میفرماد آقا میفرماد میگه آقا جان ایه بحث عقلی هست ربطی به نس نداره من امروزه سلاح رو به کوبا میفروشم به عربستان نمیفروشم او این مسلمونه منطقشم معلومه من یک دشمنی دارم که او دشمنه داره بر اساس منافع اس، برزد منافع اسلام رفتار میکنه امروزه من ممکنه به یک کمونیست بدم مثل مثلا هم فرض کنید که روسیه اما به کشور مسلمان نداره به خاطر او برزد منافع اسلام استفاده میکنه منطقش همینه منطقه سلام منطقه جنگه من دیگه این نداره که من بخوام میگم خب حالا یک روایت داشتم اون روایت مطلقه اون روایت مطلقه و یه روایت دیگه مقید میکنه اون روایت مقید من... نهای مسئله مسئله جنگ مسئله جنگ مسئله عقلانی مسئله عقلانی هم شرایط تأثیر گذاره شما به مثلا فرض کنید که امروز به عربستان نفروش 20 سال دیگه بفروش اون موقع دشمن امروز دشمنو فردا مثلا دوستشه روزیه بی سال قبل نمیفهمی امثال میفروشی اون موقع دشمن الان دوسته اون موقع دوست مثلا دشمن دشمن امروز دشمن دوسته فرق میکنه خب من اینجا اگه برم سراغ ادله متنیه نصیه در اون متنی خروجی چیزی میشه واهالو که, ای می که این نیست آقا میفرماد که این نیست که یا کافر یا مشتاک یا عدوی که در آیت آمده بلخصوص خصوص موضوعیت داشته باشد باید به خیلا رسول الله نگاه کنیم اگه فروش اصطلاح به اون موجب به چه بمثل میشود آرام چه مشتر کشته چه انواع دیگر کافر حالا جدیش ملش کنه دیگه نمیخوام بخونم منطقش معلومه یا این عبارتی باید اینجا هست شد بیشتر به کار بیاد که از آقا بخوام تعریف کنن ما در حوضه عبادات ما نمیدونیم شاره تو برکت مبارد چی میخواد بگن شاره برای چه نماز صبح رو مثلا گفته جهری بخانید من چون میدونم من هم ملاکش رو میدونیم نه تعبده دیگه نماز تأسیس شارعه روی کرده نماز جزئیاتشم مال شارعه عقل ما هم بهش قد نمیره. خب اونجا بگم خب اصل اولیه این است که نمیدونم ملت خوابن پس نماز صبح رو یواشتر بخونم نماز صبح که ملت بیدارن اونجا بلند بخونم عقل این میگه دیگه من چون میدونم ملاکش اینه شاید ملاک دیگه ای داشته باشه من خبر ندارم چه در مواردی که سنخش عبادت تعبد عقل یا تعطیل یا محله متأخر اما در جایی که عقل ملاک رو میفهمه عقل میدونه اگه این کارای کرده مسئلش چی بوده حکومت برای اداره جامعه حکومت برای اقامه دین لذا حکم حاکم جائر نمیشه تمکین کرد وست سلام حالا شما کلوی یه رواییات بیار بگو آقا اگر نمیدونم حکومت آیا تعطیل باشد یا حکومت اجرا بشه برد مگر دوستان آقا نصب باید بری به تعبیر حضرت امیر میگه لابود الناس من امیر برده نو فاجر حکومت میخوای چرا؟ به خاطر اینکه جاده امن بشه به خاطر اینکه حق مظلوم از ظالم گرفته شه به خاطر اینکه مردم عبادت کنن به خاطر اینکه زندگی نظم داشته باشه اینو حداقل را میخوایم. تو این قضیه اگر کسی بگوید خب آقا من میرم سراغ روایت روایت میگه کل رایه تن و قبل قیام القائم به او طاغوت هر پرچمی که پرچم قیام و حکومت باشد بعد پس از عصر غیبت کلا حرام است به دوش گرفتنش پس حکومت تعطیل حال خب حکومت تعطیل چیکار باید بکنی باید برسید حکومت تاقوت چرا دیگه نداری که اگه خودت حکومت تشکیل ندیم نتیجتا حکومت که لازمه تو حکومت جامعه هست تو انجام ندی با زیر حکومت جایر باید برین میتونی؟ نمیشه چون پذیرش حکومت حاکم جایر هم حرامه پس معلوم مثلا نیاز به استدلال نداره که لذاست که عرض میکنم زن که حوزه فقه سیاست فقه اجتماع فقه حکومت فقه, فقه حکومتی مواردی که می ملاکش چیه در اونجا اولیت و اولویت در استفاده از منبع اقلانیت برید تو مثلا نوپدید مستهدسه آیا مثلا حزب داریم یا نداریم این واقعی ساشوکی نیست اینا آقای حزب در فقر داریم یا نداریم یک خب این حزب الله همه القالبون هزب درست دیگه حزب پس خدا گفته حزب. ولی این حزب اسمش هزبه فاملیش فرق میکنه اون اسمش فاملیش دیگه فرق میکنه اون هزبش دیگه است اینجا حزب الله یعنی همه زیر مجموعه یک مسئله باشن یعنی اتفاق داشته باشن حزب معنی مصطلح یعنی گروه های متعددی که با هم دیگه اختلاف دارن اصلا با هم که فرق میکنه این قضیه دو چیز مختلفه اگر میتونم به واجه حزب اکتفا کنم و واژه حزب رو چون تو قرآن اومده بگم درسته با نگاه اول چون تو قرآن اومده پس حزب درسته مطلوبه با نگاه دوم حزب یعنی تکثر حزب یعنی اختلاف حزب یعنی اونجا میشه بگم غیر مجاز حالا من چگونه استفاده کنم تو بنای اوغلا مواردی که سنخش بنای اوغلا است آیا اولاً و بذار سراغ نس میرم یا سراغ بنای اوغلا میرم یه اوغلا یک یک بنای دارن یک جری دارن این بنا رو میبرم سراغ آقای اشاره آقای اشاره شما راضی این جریان رو اگه آقای اشاره امضا کرد درسته اگه آقای اشاره رد نکرد اشکال نداره پس سنخ استدلال، سن ورود و خروج در یک استنباط ناظر به موضوع اگر فقه حکومت، فقه سیاست، فقه عبادت، فقه غذاست اینا فرق میکنه ما ملزمیم به الزامات موضوع و روششناسی متناسب با همون موضوع نمیتوانیم مو در موضوع خاص شناسی خاص اتخاذ کنیم آقا می که احراز منات در امور عبادی مشکله ما نمیدونیم چرا زیرا تشخیص ملاک در عبادات بسیار پیشیده و از دسترس ذهن ما دور است ولی در بسیاری از مسائل غیر عبادی ملاک قابل تشکیز و فهم است مثل معاملات ما، در بسیاری از موارد فوقا با اعتبارات فتفا میدهند سراغ نس دیگه نمیرن میگه معلومه دیگه و این اعتبارات مبتنی بر کشف مناتات هست بعد از بزرگان نیز به این مسئله که مناتات و رو در غیر عبادت مصد میتواند اجتباکت تصدید شدن کاری بشن نتارم. در خصوص یک مقدمه رو بازه عرض بکنم یک بحث این آقا توی آغاز این دوره هایی که فقر تشکیل شد تو بحث فلسفه فقر آقا توضیح می ده. تو بحث در خصوص مرحوم شیخ مفید و تو اون هزاره شیخ مفید می ما یک اخباری هایی داریم که این اخباری ها سه نو اخباری داریم سه نو تقریبا یه اخباری و محدثین که قرن تقریبا چهارم هن یه سری اخباریون که قرن دهمن، یه سری هم امروزن حالا اسمش رو ممکنه بذاریم تفکیک ممکنه بذاریم اخباری رو نمیدارم ممکنه نهره های مختلف هم داشته باشه بحث آقا توی اولین سال‌های فقه در اولین سال‌های فقه که آقا میخواد بحث شیخ مفید رو تربیش کنه بحثمون اقلانیت رو میخواد تربیش کنه بیار اونجا یک ماجرایی در جهان اسلام روخ میداد. ماجرا این بود که از زمانی که علوم از غرب به سمت اسلام آمد از زمان مثل معمون که سعی کردن همه علوم رو از غرب بگیرن توی ایران بیارن توی اسلام بیارن ترجمه کنن و توسعه بدن فضای موجود به سمت اعتضال رفت به سمت معتذل بودن رفت اعتضال یعنی اون منطق عقل بسندگی مثل همین دیگر اندیش که امروز هستن همه دین رو میخوام با عقل بفهمن که عقل من اینجوری میگه دیگه من قیل از این خودشم مقلد خودشه مقلد عقل خودشم تو اون ایام که اعتضال و اعتضالیگری فراوان بود و تازه اصل غیبت هم داره شکل میگیره و روایات ما عملا هنوز جمع نشده محدثین در قرن چارم سعی کردن فارق از اقتضای اقلانیت فارق از استنباط فقط بیا میگن امام چی گفت تمام فقط نست لذا کتب اربعه تو این زمان نوشته میشه اون زمان اگه فقیه میخواست فتوان بده عین واژگان روایات رو میآورد. سن از میکرد. هزمیکرد این میشد افتاع یه نوع نگاه بود که عمدتا درش عقل و عقلانیت راه نداره اصلا اونا میخواستن وارد و عقلانیت نشن که اگر وارد حوزه عقلانیت میشدن ممکن بود اون اسلام اصیل از دست بره تو فضای اعتضالیگری تو همون ایام یک نهله دیگه ایجاد شد که اون نهله عمدتا صاحبان فکریش ابن عقیل و ابن جونیده گفتن خب ما که نمیتونیم فقط به نص عبارت اکتفا کنیم که نص عبارت اشتهاد که نمیشه که چه کار کنیم؟ بریم سراغ تجربه اهل سنت اهل سنت حدوده مثلا سه قرن هست که دارن استنباط میکنن دارن اشتهاد میکنن ما بریم از تجربه اونو استفاده کنیم لذا اینا چون روش شناسی متناسب با فقهشیه نداشتن رفتن یه وقتای بقیات استنباد کردن یه وقتایی رفتن به اجماعی که اونها داشتن استفاده کردن لذا عمدتا روش اتخاذ شده ابن عقیل و ابن جنید که تو قبل از مرحوم شیخ مفیدت عمدتا به شوزوزات منجر میشه اگر مثلا کتابایی که قدیم ما میخوندیم مثل لو و اینا معمولا به اینا نسبت میدن مرحوم شیخ مفید که که مهمه که سب، سبقه کلامیش قویه سبقه اقلانیش قویه متکلمه البته زیفنونه مروم شیخ مفید میاد و هم میگوید عدم استفاده از عقل ما رو به جایی نمیرسونه لذا محدث بودن به من اجتهاد نیست نکته دوم اجتهاد غیر مصطلح اشتحاد غیر, اشتحاد غیر مرسوم یا سننگری او هم همارو به مسیر نمی رسونه دوتاش خطرناکه لذا اولین بار داره شکل میگیره اون فضای اشتحاد رو به سمت اشتحاد مصطلح و نکته مهمش اینه که اجتهاد مصطلح که وقتی از مرحوم مثلا شیخ مفید شکل مرحوم شیخ توسید که تسبیت شد و در قبال سنت یک قوامی پیدا کرد این اشتحاد سبقه عقلانیت اقلانیت در او قویه اقلانیتی که مبتنی بر عدم افراد و تفریطه نسبسندگی نیست اقل حد هم نیست اینکه این وسط آیا اقل به معنای اقل مستقله اقل غیر مستقله بگذاریم؟ یه جلوتر صحبت کنیم بازم چون عبارت اطمالا شما میبینید من عبارت رو عبارت معلومه دیگه نه دیگه عبارت رو نمی کنم. خودتون طبیعتا بهش میتونید استفاده کنید نفقد برخی از عبارت آغاروی که دیگه مناسب تره یکی از نکات مهم در بحث جایگاه عقل چون وقت نظر می ما دو حیث توی عوضه عقل داریم یک عصن سنخ عقل اینطوری عقل یا منبع یا روشه اون سنخه که گفتم بقیه‌شو نپردختیم که عقل در اخباریا چی میگن و نهل جدید چی میگن الان فعلا محل بحث نیست آقا من تاکید نکردم در عقل خیلی مفصل نیست دیگه نهی بردم مهم همین نیست وسط اما این نکته که میگم به سنخ اخباریا برمیگرده عقل دو تا سنخ داره دو ویژگی داره یک عقل منبع استنباط دو عقل روش استنباته. هر دو تاست اخباریهای قرن دهم ده عقل را به مصابه منبع استنباط انکار میکنه یعنی عقل منبع استنباط نیست اما روش استنباط هست یعنی روش استنباطی میگم من که دارم استنباط میکنم عقل به عنوان دلیل تلقی نمیکنم عقل دلیل فقهی من نیست من که دارم استنباط میکنم بلا نسبت دیوانه که نیستم که میگم این آیا نس ظهور دارد یا ندارد میگه دارد خب من به ظهور عمل میکنم استفاده از ظهور که مجازه است کار چیه خلاص دیگه اینکه من این وسط یا به قول استرابادی میگوید آقا شما مثلا منطق آقای منطق اشتباه میکنه؟ نه سقرا کبران نتیجه همیشه درسته اگه این مغالطه مخ... شکل نگرفته باشه درسته میشه ریاضیات همیشه درسته دو به علاوه دو همیشه میشود چار خطا ندارد از تلاباتی میگه آقا اما عقل به عنوان دلیل خطا دارد چرا؟ به خاطر اینکه یه نفر استدلال میکند به دلیل عقلی میگوید 100 درصد یه نفر استدلال عقل میکنه یه چیزی صد درصد میگوید نه هر دو استدلال عقل میکنم. اگه درست باید هر دو درست بود والکه هر دو, دو نمی درست باشه استدلال استرابادی اما نکته مهم اینجا اینه من از این باب مخوام ارز بکنم که اون عقل منبعی که محل کلام عقل منبعی عقل روشی ما بحثی توش نداریم اصالت ظهور و اصالت اطلاق و اصالت عموم و یا حتی مثلا استصحاب اگر به معنای بنای عقلیش باشد و تعبد نباشد و احتیاط امینا عقل دیگه, دیگه نمیشو دیگه گذر کنیم اما اینکه منبع استنباط هست یا خیر منبع مستقل است یا منبع غیر مستقل هست؟ این محل کلامه در حوزه فرهنگ ناظر به فقه حکومت و سیاست و اجتماع ما عقل مستقل برای یک قضیه حتما داریم مثلا اون بحثی که مثلا تو بحث فروش اصطلاح گفتم عقل حاکم از عقل دعوای نادر تو این قضیه عقل میگه همین از غیر از این نیست و مثالایی که اجمالا زدم عدالت حتما خوبه حاکم مرزن به عدالته و سلام میتونه قرار از باشه در جایی که عقل حاکمه آیا میتونم برم سراغ نست؟ نمیتونم تمام مسئله اینجاست لذا یکی از فجاعهی که اتفاق افتاد فاجعه ولاد قرن دهم ده مرو کرکی جدی مطرح کرده فقه حکومتی مرو منه کرکی جدی مطرح کرده از قرن دهم ده و کرکی یه قد که میریم جلوتر یه دفعه ای اوال مثلا حدود قرن 11م اخبارگاری شکل میگیره ولایت فقی دو تا اون سال میخواد تو کشور ایران محقق بشه یک روش دو امکان فوقه با اینکه همشون تو شون توزه به به بلادفقی هستن و رجوع به حاکم و فرض میدونن اما عملا به خاطر حکام جائر نمیتونستن ولایت بلادفقی مطرح کنن مثل اینکه که اولوزه مثلا سونیا یا مثلا ارمنیا بگن آقا ما بخوایم حکومت داشته باشیم خب شما کیلو چندی هستن نمیشه مطرح کنن ما در اسر <تصفح> قیبت تا قرن دهم هم جز یه بخشی از قرن چهارم و حدوداً پنجم اصلا نمیتونستیم تقییه حد سری خب نمیتونستن آقای مصرا نکردن از قرن دهم به بعد حکومت شد شیعی شد صفبیه صفویه شیعه مذهب به فقها گفت بیاین کمک کنید از قرن دهم یه دفعه ای شد اخباریگری گفتن آقا عقل تعطیل هر چه خدا گفت تو خدا عقلم گداده دیگه گفتن آقا قرآن تعطیل چرا ما نمیدونم قرآن چی میگه که ورنگ خدا بفهمم پیامبر و ائمه ما نمیفهمیم بذار کنار عقل عقل که حال دعوا است مو چه میشه بذار کنار اجماع که مولا ثنیاست ولش کن بریم سراغ چی روایات اجتهاد تعطیل روایت تا هر شما فهمیدیم همین اصلا مرجعیت در زمان اخباریگری تعطیل من خدا میفهمم انگار که امام گفته است مثلا من انگامی که مثلا دسام خونم چکار کنم امام میگوید یخت نسل منم میگم میفهمم امام بهم گفته دیگه تمام شد رفت اصلا یعنی چی مرجعیت تعطیل شد اجتهاد تعطیل شد به تبع مرجعیت و اجتهاد ولایت تعطیل شد در دو قرن طلایی که ما اونجا امکان تحقق ولایت فقهی تو جامعه داریم روش شناسی معیوب اخباری که دلیل عقل را به عنوان منبع استنباط ندارد عملا ولاد فقیر باید بذاره کنار چرا باید بذاره کنار؟ خب روایت من جواب نمیده که روایت من میگوید کل رایتن طرف قبل قیام القائم فسابه و تاغوت حکومت تحتیل روایت من میگوید که اقامه حدود فقط مال امامه پس تحتیل تا امام بیاد پس چیکار کنم؟ بشین تو خونه سر کن تا امام بیاد تمام. اخبارگری قرن دهم عقل و گذاشت کنار به طبع قرآن و گذاشت کنار به طبع اجماعی که شیعه استفاده میکنه گذاشت کنار رفت سراغ روایاتی که که این روایات صحت و سقمش معلوم نیست به خاطی ما در طول اصر غیبت الا ماشاءالله روایت جل شده الا ماشاءالله راوی جل شده خب من این وسط روایت به من می این کار رو نکن منم میگم می باشو نکن حالا امام تغییر کرد یا نکرد من چی میفهمم؟ در قبال روایت کلورایی آیا من باید عمال معروف انجام بدم یا ندم عقل حکم میکنه اما او عقل استوازه نمی کنن می عقل بافتنیه عقل خیال پس بذاره کن. لذا عقل مستقل که خلیه و طبعا می توانیم و باید از این عقل استفاده کنیم این محور و ملاک در حوزه امور عقلانی در حوزه امور سیاسی اجتماعی همین هست ما نوبت به نس نمیرسه رسه مرحوم امام در بحث اون چیزی که توی مکاسب داریم بیع الانب من یعلم انه عمله خمرا یه کسی خونه باغ داره باغ انگور. باغ انگور رو میخواد بفروشه به کسی که شراب سازی داره. میتونه بفروشه نیت نمی کند. به این نیت نمیده که او شراب بسازد. او به این نیت میده که او بخوره. حالا به من چه مربوطه او خودش استفاده کرد. روایت میگوید گوید مجازه. روایت و سند میگوید امام هم این کارو انجام میده. خب ما باشیم با چیکار کنیم؟ میگوید آقاش ماد انجام بده دیگه؟ مرحوم امام فرماتی آقا روایت داشته باشیم سعی و باشه اما چون با عقل مستقل مخالفت دارد فتره او علال جدار روایت ما میگه چرا؟ مگه میشه امام معصوم به یه شراب فروش که کار شراب فروشیه عادتا تو میگیره تبدیل به شراب میکنه و آن اسمه و کمک که به گناه هست بفروشه و بگه من نیت ندارم او بفروشه خود خودش بفروشه خود بفروشه امروز توی جامعه خودمون یه نفر این کار انجام بده دیگه شورا هم راج نمیدند تا جی برات بخواد رای جمهور بشه رهبر بشه و این حرفو میگه تو شرابخوری اصلا با این منطق مستقل روایات صحیح و سند و دلالت رو بذاریم کنار یا مثلا شما در بحث ام هیال ربا هیال ربا خدا میگه ربا جنگ با خداست ربا یعنی ربا گرفتن جنگ با خداست بعد در کنارش میگه اشکال نداره اگه شما این وسط ربا نمیخواد بگیرید یه خودکار بذار وسط بگیم پول بقیش ما این خودکاره این یه میلیارد اضافی ماله این خودکاره اما اون بقیهش ماله اینه این دیگه ربا نشد چه اتفاقی دو جامعه افتاده غیر از همون ربا خاریه خب دیگه شما توجیه کنیم آیا اون قایت را از بین بردی قایتی همونه دیگه این سنخ از استنباط رو اگر ما تبدیل کنیم به اینکه شما هیل ربا رو استفاده کنیم و دور بزنی قانون رو میگن خود دور زدی شاره رو دور زدی. قایت شهره رو دور زدی حدف شهره رو دور زدی میگه نه من به حرف شهره عمل کردم فکر کنم وقتا تمام شو داره من خیلی کنوکه مخاطم بگم اما گذر کنیم اجالتاً نقطه‌ای که در مجموع توزه روش شناسی خواستم انجام بدم، همین نقطه رو از دادگاه گفتم نکته مهمیه. در خصوص امام یک نکته‌ای کردم که تو بحث امام از دلیل عقلی برای ولایت فقیه میرسه به گستری اختیارات. اصلا نیاد به عدل روایی دیگه نمیرسه. چرا؟ ویژگی دلیل عقلی در یک ویژگی خاصی داره. عقل یعنی دلیل عقل نه روش. دلیل عقل بیانه، واضحه. یا هست یا نیست اگر هست عقل تمام ملاک میفهمه یا میفهمد به جمعی ملاک یا هسته نمیفهمه اگر عقل میفهمد که احسان خوبه است عدالت خوبه است ظلم بد است با جمعی خصوصیات میفهمد اجمال ندارد تا من قدر متقنگیری کنم یا اطلاق گیری بکنم سنق دلیل عقلی دیگیش اینه که عقل برخلاف بنای و غلا میتولی بنای و رو نمیدونیم هست نیست چقدر هست تا کجاست اوغلا چرا مثلا فرض کنید قانون پذیری دارند هر کی ملاکی دارند یکی از ترس قانونی که از ترس جریمه که خاطر حکومت یکی به خاطر حکومت دینی قدر متعقنشه اینه که اگه, اگه, اگه نکنی جریمه میشه این قدر متعقنشه چرا نماز می قدر متعقن از همه مو که جهنم میریم. این که برای شوق خدا و برای اینا که قضی متقن ما نیست این قضی متقن است اما دلیل عقل میگوید یا ملاک هست یا نیست عقل تمام ملاک رو میفهمد اگر فهمید به جمعی ملاک ها اگر نفهمید چی؟ لذا اگر با دلیل عقل گفتیم ولایت فقیه هست در مقام شک هر کجا ملاک بود میگیم هست دیگه قدر متعقن و اطلاق و بعد سراغ ق... اون موارد شک بریم سراغ قدر متعقن دیگه نمیریم این ویژگی دلیل عقل هست که آقای اینجا تبیر دارن که حکم عقل به حرمت اعانه بر اسم یه چیزی اعانه بر اسم هست آگه روایت میتونینو از بین ببره تقیید بزنه اعانه بر اسم حرام تمام اگر شرب خمر فروش انگور ایانه بر اسمش بس حرامه کی جم نمتونه تخصیص بزنه اقلانیه حکم عقلی قابل تخصیص نیست تخصیص تحقیی در اقام عقلی معنا ندارد اما در بنای وقلات داره این که در بنای کلا بده به یو سال رو اگه من به سوال جواب بدم و طبق الوال گفتن تو هفته ده دقیقه اجاز من یک نگاهی بکنم نقش عقل و تجربه در سنیم باقید دینی چقدر حکومت ها از منصب قضا دخته فاقه ها بودی بدون حکومت تشکیل داده باشند آب و آشامیدنی کاربست شناسی آب آشامیدنی خوندم آسیب شناسی کاربست عقل در منبعیت و, و آسیب شناسی خیلی جزئی میشه ولش کن در بحث فروش صلاحه حکومتی حکومتیه یا حکم فتوا دادن این حالا یکی از بق... یکی از نکات مهم اینه یک کاغذ اینقدیه خب آقا کاغذ اینقدی خب پولش کن دیگه چه ریزه بشه من خودم اینجوری نگاه کنم خب این بود که این کاغذ چه سوالی برداشت بذمش کنار دیگه اینا میشه حکم عقلانی فروش صلاحه رهبه تواز روایات نه بس عقلی بله خیلی اه... از اولیش یه سلامت بفرستیم در مسئله مستعدسه ما یه سری چیزها داریم سنخش عقل نیست نس هم نیست تجربه بشریه تا چند تا چند وقت داریم هنگ دقیقه؟ شوخی گرست یه سری چیزا مثال مستحدثه داریم جان اه، من مسترم فعلا انسان های مختار مستر میشن و الا با اختیارشون <تصفح> اموری <تصفح> توی فکر <فقل> داریم که <تصفح> مستحدثه سنقش <تصفح> عقل مستقل نیست بنای اغلاست اون قرار به این نتیجه رسیدن که برن سراغ بیمه بانک تفکیک قوام ارتش نمیدونم موارد مستدیزی که من فراوان داریم پول سکه نمیدونم سفته اینا رو چه کار کنیم عقل به من میگوه زوراتن نیاد بین حرف ها نداریم نس زوراتن بین این ها مکاری نداریم تو نس نه بیمه در میاد نه توی عقل بیمه در میاد با این ویژگی که د آیا تجربه بشری در بنای و به کار ما میاد یا نمیاد و اینو در نظر بگی تو بسیاری از اموری که امروزه در استفاده میکنیم مسائل قدیمی ما ده تا مسائل جدید ما 100 شما شما تو اون سیاست وقتی مرور کنیم مباحث قدیمی رو که استفاده میکردیم الان اصلا باش کاری نداریم خلافت و بیعت و نمیدونم این سری که اصلا ما باش پای نداریم امونی که باش کار داریم چیه قانع اساسی، مرزهای ملی، تفکیر قوان، ریاست جمهوری، پارلمان، انتخابات اینا همش مسئله جدیده در مسئله جدید که عمدتا تجربه بشری بهش رسیده آیا میتونیم به تجربه عمل کنیم و به عبارت دیگه به بنای اغلا عمل کنیم بگیم آقا بنای اغلا این گونه بوده است پس ما عمل میکنیم مقوله اغلا ایست دیگه اغلا اومدن کار انجام دادن هدف که وقت ندارم ولی آن چون قدم شو... چورت هم داده شو شوخ میکردم چورتتون بپریم یه تارو بفرستین نه ببач اومده تا فکر نمیکنم جر نمیشه نمیشم به هرطور گذاشته که هم نبود فکر میکردم که مثل ما پیر در بنای عقلام توی تو پیرمادر شر درست می‌کنی برای ما این حالا <تصفيق> اونایی که لمه می‌خونن دیگه بادهشون دیگه ما لمره که خوندیم بر اثر دیگه یکی اومد یه طلبه اول کاری اومد گفت آجان ازدواج و همبستری همسران به چه ملاکیه دلیلش چیه فکر کجایی مثلا قرآن روایی مثلا داره که روایت دلیل عقل هرچی فکر یادش نمید گوه وقا سیره ثابت علما مندقش هم درسته گوه وقتی همه علما فرزند دارن علما هم که بود و رو شکی نداریم عیمه هم که این کار انجام دادن و الحمدالله اولاد ائمه نسلشون ساداد بیشتری نسل در عالم هست پس معلوم موجود و سلام استدلال تمام شد حالا سوال هم اینه آیا بسیری ثابت علما میتونیم عمل کنیم یا نه تو امور مستعد هست علما منظور علما غربی زیگه. اونا گفتن آقا مثلا فرض کنید که انتخابات منظور از انتخابات اونا غیر از انتخابات ماست خیلی مختصر و محیط برفم گذار کنم چون واقعا پنی دقیقه دیگه نمیرستم ما تجربه بشری دو تا ویژه دارم تجربه با تجربه غرب دو تا ویژگی دارم غرب اقلانیت غرب الهاد اگر در یک تجربه بشری یک تجربه است که در او الهاد وجود ندارد مثلا میخوام بگم توپ تانک سلاح رفتی الهاد نداره پیروزی پیروزیه حالا هستهیش سر جا خودش کار با اون ندارم نه سلاحای های جدید برای حفاظت آقا اسپری فلفل فل. این که دیگه برای کمکه در جایی که تجربه بشری سنخش اقلانیت بشر به ما بشر هست این تجربه به کار ما هم میاد ما مستفاده میکنیم در جایی که تجربه بشری هست یا قید الهاد دارد یا احتمال قید الهات دارد احتمالش هم مهمه لذا عمده مواردی که توی غرب توزیع سیاست توزیع اقتصاد وجود دارد، این احتمال وجود داره بانک برای سرمایه‌داری است حزب برای تکسور قدرته برای قدرت گرفتن و و و موارد در جایی که احتمال دارد در جایی که احتمال ندارد سنخش تجربه بشری استفاده می‌کنن فرضاً برای اینکه تجربه ما و تجربه با امضای شاره قطعیه همراه. در جایی که احتمال میدیم یک سنخ ممکن است بگویند که آقا شما در اونجا باید برید سراغه امضای شاره اگه شاره امضا کرد خب شاره که ماباد جدیدی که نداره امضا بکنه که با کلیات امضا بکند با کلیات من نکرده باشد ممکن اینجوری بگیم و درستش کنیم اما مهمترش اینه که بحث آقا تو بحث فقر نظام رو مطرح قدیمت را کنیم اینه که شما ببینید غایت این کار چیه؟ بانک باز ویژگی که داریم بانک یعنی سرمایدار کردن سرمایداران بانک هیچ وقت ادارت اجتماعی ایجاد نمی کن. اصلا کارش این نیست بانکداران همین رو میگه بانک کارش اینه که پول سرمایدار رو اضافه کنه از کنار او برای فقرا و یه قدیم داشته باشه اما قرآن میگوید که اله تکن دولتن بین این گردش سرمایه کار بنابراین بانک آیا میتونم با عدم من و امضا نه برم سراغ اون قایتش اون نظامش اون چیزی که برش ایجاد شد انتخابات انتخابات توی غرب یعنی بلا نسبت خدا نیست خدا از معادلات حذف بریم سراغ بشر بشر این وسط هر چیز حد اکثرش گفتن ملاکه گفتن آقا سخت جنین مجازه مجازه گفتن یه آدم جاهلی بیاد حاکم بشه بشه میشین این کاری انجام بدیم خیر لذا در جایی که احتمال الهاد و ظلم و جور باشد حتی با عدم رعد و امضا نمیتونیم سراغش بریم بلکه باید بریم یه قدی اون سراغ اون نظام پیشینی لذا ما باید بریم بر اساس تجربه غربی تجربه بشری گونه ای از انتخابات برای خودمون درست کنیم که اون انتخابات مبتنی بر مبانی ما باشد یعنی اسم هر دو انتخابات فاملیش فرق میکنه این انتخابات اسلامی و انتخابات لیبرالیه انتخابات ما با انتخابات اونا کاملا فرق میکنه انتخابات اونا با اکثریت مطلق اکثریت مطلق یا نسبیه انتخابات ما مبتنی بر اصل شورا یا بیعته دو تا مقوله جداست لذا در تجربه بشری که بعدم بنای اوغرا بیشتر خواستم اشاره کنم از این سوالات چون بگی بیشتر نمیرسم در تجربه بشری و بنای اوغلا در نهایت ورا آقایون گفتن بعضا به بنای اوغرا بمون و به عمل کنیم. اینو خیلی و خیلی کم میگه تو واقعا خیلی کار سختیه و فکر جدید از توش در میاد که شاره بنا رو تجویض کرده اما اینکه خود بنای خاص رو بگیم شاره تجویض کرده با امضا تو مبانی کلیات اطلاعات یا اینکه نه من نکرده باگ آیه شاره یعنی من نکرده ملاکش رو فهمیدیم و من نکرده که اگر شوره امروز بود پیامر امروز بود ملاکی رو میفهمید میگفت نه من قبول ندارم بهش این طباقات داره مشکلات داره نظام اینجا باید یه قدیه سراغ اون نظام پیشین و به تعبیل فقه نظام و با اونجا این قضیه رو حل کنیم برگرش رو نمیرسم چون واقعش اینه که فقط اون عقل و تجربه فقط سعی کردم بگم و برگرش نمی نمیرسم اجازه بذارید که نگم تو بعض فروش سلاح محکومتی نیست حکم حکومتی به اینام اجمالا نرز بکنم به کارتون بیاد حکم حکومتی غیر از حکم حکومت غیر از حکم حاکمه حکم حاکم یعنی مقام و عظم رهنی به عنوان حاکم فارق از اختضاعات حکومت یه حکم میدهد حکم حاکم هست اما حکم حکومت نیست رویت هلال حکم حاکم هست گفت آقا هلال ف... ثابت شد حکومتی نی, یعنی حکومت نیست حاکمه یه سری چیزاست که سنخش حکم حکومته یعنی اگر فتوای فقیه یا شرانگربان تبدیل می شود به قوانین اون می شود حکم حکومت حکم حاکم و حکم حکومت کلیه حکم حکومتی این ابتبته باست مفصلی داره حکم حکومتی یعنی در مقام حکمرانی در مزان تزاهم و تعارض برای رفع نظام حاکم بیاد غیچی کنه اینجا دلیل میگم بحث مفصلی داره اجمالا بپذیرید از من این رو لظام رهبری میگوید آقای مصلحی دو زمان احمد نجاد آقای گفتش بفهم و استفای هم گفت استفاده داد رفت کنار رهبری گفت باقا برو سرجاد بشین گفت باش تموم شد اگر طبق روال باشد استعفا داده مجدد باید رعی جمهور کنه مجدد باید بره مجلس مجلس دوباره بیاد این فراینده نیست رهبری میگوید چون من مدیر جامعه کلان هستم اداره بوده منه در مقام این مسالهی که من میدونم و تشکیص میدم آقا و سلام برای سرجات بشین تمام تمام یا نزاع موجود یا محتمل از بین میرود قانون مطبوعات مطرح بشود یا نشود طبق قانون باید طبق روال بره رهبره میگه بذارید کنار آقای کرروبی هم گهت میگه بذارید کنار حکم حکومتیه حکم حکومتی مقوله جزئیه موردیه زمانمنده تابع مسلحته برای رفع نزاع از جانب حاکم در مقام اوکرانیس شکل میگیره لذا فتوای حسده آقا حکومتی نیست قاعده کلیه استفاده هستهی حرام است جوزی نیست حکم کلی قایده کلی اگه در مقام جوزی و برای برون رفت از بحران و تضاهم باشد می شود حکم حکومتی ولی حکم حکومتی نیست نه بحث سلاح هم بحث حکم حکومتی نیست بلکه فتوای مبتنی بر عقل چون گفته نکته دیگه ارز کنم ما در مثل هستهی برخی آقای میگن تو ای حکمش حکومتیه چرا؟ چون امروز آقا میگوید آره ممکنه فردا اختیار عوض بشه شرایط عوض بشه بگن نه تو توفق دو چیز داریم یک حکم ناظر به ملاک و این ملاکه وجود دارد ببینید من میخوام وضو بگیرم دو تا حکم دارم حکم ثانوی ندارم من حکم اولیه یعنی حکم اولیه؟ حکم برای من برای واج حکم چیه؟ وضوعه برای فاق دلما تیمومه. تمام دیگه اول ثانوی ندارم من حکم برای زرر تیموم برای غیر زرر وضو در مقام ای. اگر تابع ملاک از بین بردن موجودات و نمیدونم طبیعت و ظالم و مظلوم و همش ملاک می مطلقا حرامه در غم زنیم ملاک این است که شما موجب وحن می شود. تا ملاک هست؟ هست پس تابع ملاکه وقتی تابع ملاکه حکم کلیه مثل مرحوم میرزای شیرازی که بعضی میگن این حکم حکومتی حکم حکومتی نیست فتفاست حکم مرحوم میرزای شیرازی در بحث تحریم تنباکو فتوا است. اما فتوای قبل از مرحوم میرزا میگوید آقا شربه توتون مجاز است یا خیر؟ مجازه. چرا؟ چون بحثش اینه که آیا من استفاده بکنم یه ضرری دارد؟ یک مثلا لذتی هم میدهد. زرر اولویت دارد یا لذت؟ میگن یعنی خدا اشکال نداره. اما مرحوم میرزا میگوید الیوم استعمال و توتون و تنباکو الیوم به خاطر اینکه مستلزم غلبه اقتصاد انگلیسی و قرارداد مثلا رژیمی شود پس حرام است قرارداد از بین رفت دور میرسراج خودش حکم حکومتی نیز حکم تابع ملاک, ملاک نفی سبیل امروزه بر قرارداد توتون حاکم میشود میشود می حرام نیست میشود مجاز غمه وحنه هست حرامه تو خونه میرم خودم و خودم به جایی که برم مثلا ام، ام، چی می تیغ میزنم به پشت آدم اجامت حالا اجامت به سر میکنم حالا میخوام به جایی که تیغ بزنم یک قدیه تیغش گروفتره مثلا مثلا میخوام داخل اتاق خودم وحن نیست حالا عقلانی هست یا نیست انجام بدم یا نیست کار بهش ندارم اما ممکن نداشته باشه. این حکم حکومتی نیست حکم کلیه تابع وحنه رزاق آقایون گفتن زرره وحنه هر وقت وحن بود حرامه وحن نبود مجازه ببخشید من یه قدری فکر میکدم من یه ساعتون اون راقل وقت دارم میخواستم این مقاله یه قدیم مرور کنم و علا از ظاهر فکر کنم از وقت خودم هم انگار ادول کردم ببخشید جلسه خوبی بود از دیدار شما بسیار خوشحال شدم و انشالله تا باشه کنار طلبه ها بودن و با اونها گپ و گفت کردن و به خصوص تو اول وقت جمعه وصلی علی سید محمد و علی محمد علیکم السلام ساز و تا خاموش بشه بعد